ابن سینا هزار سال پیش در بخارا به دنیا آمد. حتما نام او و کتاب‌هایش را شنیده اید بله، او کتاب شفا را در مورد فلسفه و منطق نوشته است. درست است. اما ابن سینا علاوه بر اینکه فیلسوف بزرگی بود، پزشک مشهوری نیز بوده است پس حتما در مورد پزشکی نیز کتابهایی دارد بله او در مورد پزشکی چند کتاب نوشته که معروفترین آنها کتاب قانون است استاد در سریال تلویزیونی ابن سینا داستانهای مالجات او را دیده ایم خوب است که این سریال را دیده اید او پزشک فقرا و پادشاهان بود من شنیدم کتاب قانون از ترین کتاب ها در دنیا بوده است بله همینطور است این کتاب از منابع مهم علم پزشکی بوده است پس قانون ابن سینا کتابی درسی و آموزشی است بله تا دویست سال پیش این کتاب در دانشگاه‌های مهم اروپا تدریس می‌شد. استاد در مورد فلسفه و ادبیات ابن سینا چیزی نگفتید. حق با شماست. ابن سینا فیلسوفی بسیار بزرگ بود و شاعری زبردست نیز بود. ای کاش تمام 450 اثر ابن سینا را در دست داشتیم